شب چند بار از سرما بیدار شد و بیشتر خودش را به طرف کرسی کشید. گرمایش دلچسب بود. صدای مرموز نیزار در گوشش میپیچید. جخت بزرگی از بالای سرش میگذشت و گرد را میدید که روی تپه مثل مجسمه سنگی نشسته و به نیزار نگاه می کند تا صبح چند بار بیدار شد و به زحمت خوابید. سقف اتاق صدا میداد گویا کسی روی بام میرفت می‌رفت یا مارو موشی لا بهلای و شاخه‌های زیر سقف میخزید. آنها آن طرف کرسی راحت خوابیده بود و یک نواخت نفس میکشد گربه هم گاه به گاه مثل سایه نرم و بی صدا در اتاق به این طرف آن طرف میرفت صبح وقتی در راهرو را باز کرد از آنچه دید متعیر شد نمیتوانست باور کند قافل گیر شده بود چشمندازش سراسر سفید شده بود روی شاخه ها لابلای ها و چمنزار تا دور دست برف نشسته بود ابری زخیم و بی آسمان را پوشانده بود پایین دست، آنجا که رود به نیزار و دریاچه می رسید، فرو آمده و همه درخت ها و تپ ماهورها را بلیده بود. هنوز برف می بارید، اما آهسته و خسته. حتی گاهی بند می آمد، ریز می شد و دوباره جان می گرفت. در همان حال، سر و کله سگی که پشت رویش به اندازه چند انگشت برف نشسته بود، از میان عبرومه پیدا شد. به آن طرف می آمد. نبا شتاب و نه خیلی تند. بلکه آرام و با گام های بلند نزدیک میشد. اسمایل آنقدر ایستاد تا سگ به پرچین رسید. صدای آنا را شنید. بیا تو سرما میخوری برنگشت. تنها سر برگرداند و به آنا نگاه کرد. به او رسید و با دلسوزی گفت: برف این موقع زود آدمو میندازه. برگرد بریم خونه. اسماعیل با انگشت به سگ اشاره کرد. آنا نگاه کن. از طرف دریاچه اومد. خودم دیدم آنا پیش آمده با دقت نگاه کرد و ناگهان گفت این که همون گرگه برف نشسته روش جلو آمده بود نگاهش پشت اسمایل را لرزاند بیا اسمایل بیا بریم این حیون شومه خدا امسال به دادمون برسه آنا به صدایی گرفته و لرزان این را گفت اما میخ کوب به گرگ نگاه میکرد آنا به اطراف چشم دواند و گفت پس این صحاب مرده سگاییده کجا موندن که گل تو روز روشن میاد تو ده و اونا خبر ندارن سپس سعی کرد سکها را صدا بزند اما نتوانست صدایش لرزید و زبانش چسبید به سقف دهانش ناچار خم شد و برفها را چنگ زد و یک گلوله بیغوار درست کرد و آن را انداخت طرف گرگ اما گلوله توی هوا از هم پاشید و پراکنده شد و ریخت زنید به اطراف نگاه کرد گوشه دیوار جاروی دست بلندی بود که با آن سرگین های خشک و خار و خلنگ را جارو می کرد رفت آن را برداشت و کمی به گرگ نزدیک شد. جارو را بلند کرد اما ترسید جلوتر برود ایستاد جارو همچنان روی دستش ماند گویا یخ زده بود گرگ حتی نگاهش هم نمی کرد. به نظر می رسید از اینکه برف بر یارو گولش می نشیند لذت می برد جلو رفت جارو را از دست آنها گرفت و گفت خودش می ره. خودش؟ خودش؟ پس چرا نمی ره؟ ما بریم اونم می ره. دست آنا را گرفت و همراه خود به طرف خانه برد توی راهرو را برفی را که روی سر و نشسته بود تکندند اسمایل رفت و بالای کرسی نشست گربه با دیدنش از روی پشتی گبه و مفرش پایین پرید و دمش را بلند کرد و خود را به او مالید آنا سفره را روی کرسی انداخت و با چند رفت آمد سبحانه را آماده کرد اسمایل در فکر بود در ذهنش بیرون پرچین پای درخت بید. گرگ نشسته بود و با گردنی افراشته به سمت رود و دریاچه نگاه میکرد دانه های برف پشتش می نشست و او رفته رفته تبدیل به حیولای سفیدی می شد که تنها دو چشمش مثل دو حب زغال افروخته می درخشید. تازه مشغول خوردن بودند که در زدند محکم و پی در پی پشت سرش صدای سرخان بلند شد آهای مدینه کجایی نمی آنا چهره در هم کشید اه با زمین اومد مثل حیوان بومی که شهر خونه که صفر پن باشه خودشو میرسونه بلند شد و طرف در راه رو رفت میشنوم سرخان میشنوم بیا تو در بسته از چجوری بیام تو هی میگی بیا تو بیا تو ای وای یادم نبود اومدم آهسته به اسمایل گفت تو بشین سبونتو بخور یعنی چی که این وقت روز در و بستیم تو خونه خبری است. چه خبری سرخان از من میپرسی خودت بهتر میدونی چه خبره پیشپایه تو گورگ اومده بود نزدیک حیات برای همین درو در بستم گورگ اونم این وقت روز به نظرت رسیده لا به نظرم رسیده مگه نمیدونی امثال گورگ آدمخوار این طرفو پیدا شده امان از پیری مدینه امان از پیری سرخان صرفه بلندی کرد و خلت سینه‌اش را با سر و صدا قلتی توی دهانش در اتاق را باز کرد آمد تو اینجا چقدر گرم مدینه آنا گفت تو از سرما اومدی به نظرت اینجا گرمه سرخان وقتی چشمش به اسمایل افتاد با صدای بلند گفت وقتی همچین مهمونی داری بایدم روز روشند ببندی و پشتشم سنگ بچینی گفتم که گرگ گرگ کجا بود پدر آمرزیده. زیده را انداخت روی فرش و نشست کنار اسماعیل و پاهایش را دراز کرد زیر کرسی به به به عجب میچسب کرسی تو این هوای برفی آخش اسماعیل کمی کنار کشید تا او جا شود آنا پرسید چای که می خوری؟ میخوری یعنی چی بریز بیار نفسش بوی سیگار میداد مانده و ماسیده به اسمایل محل نگذاشت او هم تعارف نکرد و مشغول خوردن شد آنا چای گذاشت روی کرسی سرخان یک کم دیگر فرو رفت زیر لاها و گفت مدینه نپرسیدی تو این سرمو کجا بودم کجا بودی تو این هوای سرد سعی از لونش بیرون نمیاد اما من کنار دریاچه تو نیزار دنبال سونا میگشتم لغمه تو گلو اسماییل گیر کرد و استکان چای شیرین دستش ماند آنا گفت مگه تو خونه نیست؟ نه، ول که میشه سر از نیزار در میاره اگه پیداش میکردم می تو دریاچه تا خوراک مارو ماهی بشین این بیحیا. هم از دست اون خلاص میشدم هم از دست رئیس پاسکا آنا گفت کار خوبیه اون بیچاره هم از دست شما دوتا خلاص میشد سرخان برگشت و نگاه تندی به آنا کرد و زیر لب گفت چی بگم به تو من؟ دست دراز کرد و از جلو نان رو کشید طرف خودش و گفت. آخه یه نفر نیست بگه الان چه وقت برف باریدنه و بعد جواب خودش را داد حالا چه چیزمون درسته که برف و بارونمون درست باشه؟ برفش در ریا نفرین شدن از بس آدمای بیخیر و تمنای اینجور آدما حقشونه که خدا هم تو سرشون بزنه بعد تنبی به اسماعیل زد و نگاهش کرد و گفت درست نمیگم؟ هر دو در یک لحظه به هم زل زدند نگاهشون به هم گره خورد مثل کلافی که نشود فوری بازش کرد اسمایل خواست نگاهش را بدزدد اما نتوانست گیر کرده بود حس سردی در عمق نگاه سرخان بود که تیره پشت او را می لرزند. نگاهش را کند و خودش را کنار کشید سرخان چند قاشق اصل ریخت روی لواش بعد سرشین قاطیش کرد و پس از چند تا گذاشت توی دهانش و پیچاند و ملچ ملچ کنان به زحمت گفت عجب چیزیه بخور این را گفت و با شانه اسمایل را هل داد به بیرون از کرسی. باریکه از سرشیر و اصل شره کرد روی چانهش. با انگشت خواست پاک کند که بدتر مالیده و کلافه شد و گفت مثل اینکه که کسافت کاری کرد. کنار کشید و تکیه داد به مفرش. گربه آمد به طرفش. مرنو کرد خودش را مالید به او. سرخان دستش را از زیر لحاف کرسی بیرون کشید. با پنجه گرگی ضربه محکمی به حیوان زد. گربه دست و پایش خم شد. شکمش چسبید به زمین و جیغ کشید و مثل فنر باز شد و پرید و رفت سرخان با نفرت نگاهش کرد ساب مرده اینم کسی رو پیدا نکرده خودشو به من میماله شانسو میبینی تو رو خدا و بعد آهسته که اسمایل بشنود گفت اگه ماده بود خودشو به من نمیمالید. اسمایل خواست چیزی بگوید اما سرخان پیش دستی کرد بدل نگیر ده دیگه آها یادم نبود تو ریش داری راستی نگفتی برای چی اومدی بنفشه دره اسمایعیل نتوانست تحمل کند از جا بلند شد و رفت طرف راه رو آنا گفت بیرون نریا سرما حرفی نزد کفشایش را پوشید در طویله را باز کرد و رفت داخل گاو به پهلو خوابیده بود و نشخار میکرد گربه هم آنجا بود داشت دستش را میلیسد و میکشید روی صورتش مرغها از ترس سرما بیرون نرفته بودند روی زمین ناخون میکشیدند و چیزی میجستند و میخوردند نشست یا آخور گاف نگاهش کرد و دندان سایید، او هم نگاهش کرد، چشمهایش درشت و سیاه و اندکی مرتوب بود، مجه های بلندی داشت که هر وقت پلک برهم هم زد، چشمهایش را میپوشاند. در آن نگاه، محبت و آرامش خاصی بود، دوست داشت ساعتها همانجا باشد و سرش را با گاو و گربه و مرغ گرم کند و به اتاق بر نگردد مدتی بعد صدای صرفه سرخان شنیده شد دیگه برم، استخونامم گرم شد آنا گفت: سی بیرون هوا سرده سگا هم از لونه در نمیان. سرخان از سگ هم سگ وا خدا نکنه این چه حرفیه که میزنی. من از این حرفو کم نمیزنم. همیشه زیر کاسه نیم کاسه پیدا میشه. بعد هم صدای باز و بسته شدن در راه رو شنیده شد. آنا رفت به طویله. اسماعیل پرسید: رفت؟ آره گور گم کرد. حالا میره خودشو به توونه خونه یکی دیگه و هر چی دم دستش اومد کوفت کنه. مثل این سگای دله اسماعیل از قبیله بیرون آمد و به حیات رفت جای پای سرخان روی برفها دیده میشد. درختان همچنان شولای سفید برف را بر دوش داشتند در پایین دست آنجا که دریاچه بود ابرها شکافته بودند و تکی از آسمان فیروزه‌ای از آن میان پیدا بود خورشید از شکاف دو ابر مانند نهر زرین سرازیر شده بود پایین باد نبود دیگر سرما تیغ نمیزد نمیبرید صدای گنجش گنجشکها شنیده میشد ایستاد روی کندهٔ درختی که افتاده بود و چشم دوخت به سیلاب خورشید ابرها کم, کم کنار میرفتند آفتاب با تب و تاب بیشتری میتابید پارههای برف نشسته روی شاخهها تاپ تاپ میفتادند زمین و آب می شدند و فرو میرفتند توی زمین دلش باز شده بود احساس سبکی میکرد میخواست به طرف دریاچه برود، بدود، به نیزار برسد، نیزار، آن نگاه رمنده و نگران، پشت ساغه های لرزان نی، درناها، قزلالاها با پولکهای های رنگین کمانی اطراف شکم، جغدی که ناگهان میپرید، گرگی که باد یالهایش را پوش میداد و نگاهش مثل دو گلمیخ داغ میخلید در چشم، صدای قاس های وحشی میامد، قاد، قاد، قاد، هر قدر نگاه کرد ندیدشان، پشت ابرها بودند، شاید هم لابلایشان. از سر و صدای بچه ها و جیغداد مادرها فهمید که امروز شروع درس بچه هاست. مدرسه پایین ده بود، سر راه شهر، با پرچمی که برفباران باران نقش شیر و خورشیدش را پرانده بود. سلطان می گفت مدرسه یک کلاس بیشتر ندارد. یک معلم می آید و به همه بچه ها توی همان یک کلاس درس می دهد. خودش هم مدیر است، هم نازم و هم سرایدار. میخواست برود و با این آدم چند کار آشنا بشود با عجله سبحانه را خورد و بلند شد آنا تعجب کرد کجا با این عجله؟ مدرسه باز شده میخوام برم اونجا اونجا برای چی؟ درس دیگه مدرسه است وا درس برای چی؟ تو که ماشالله برای خودت سواد داری از اون بیشتر میخوای چیکار؟ اسماعیل خندید میخوام برم بهشون سر بزنم همین خیلی خب برو، خداتو سرما نده از خانه بیرون آمد، چشمش به سبلان افتاد یک پارچه برف پوش شده بود، سفید و درخشان سر و صدای بچه ها بیشتر از میدان ده می آمد. خودش را به آنجا رساند چند نفرشان دور هم جمع شده بودند و بلند بلند حرف می زدند و لباسهای عیدشان را به هم نشان می دادند. بیشتر پسر بودند دخترها با های رنگی و کیف و کتاب مرتب کنار ایستاده بودند و میگفتند و میخندیدند و گویا منتظر دوستانشان بودند که بیایند تا با هم به مدرسه بروند. اسماعیل گوشهای ایستاد و مشغول تماشا شد. چند زن و دختر کنار چشم مشغول شستن ظرف و پر کردن کوزه بودند. بچه‌ها ساکت شدند، مثل گنجشک‌هایی که حضور شاهین را احساس کرده باشند، جیغ کشیدند و هر یک به گوشهای فرار کرد. سلطان رسید وسط میدان کف پاهایش را به زمین ستون کرد و ایستاد کمر راست کرد و گردن کشید و گفت مگه شما مدرسه ندارین بزغالا حالا میخوان بی سواد بمونین یکی از پسرها گفت تازه مثل تو میشیم سلطان او را دید نشانش کرد به طرفش راند پسر خودش را به اسماعیل رساند و پشت او پناه گرفت و با ترس گفت آقا آقا تو رو خدا نترس قایم شو سلطان رسید باز هم پایش را روی زمین ستون کرد و ایستاد و گفت سلام پسر خاله حالا احوال می این بزغاله ها چه بلبل بل زبونی می کم پیدایی سلطان هیچ سراغی از من نمیگیری. پسرخاله پسر خاله هر وقت برفیاد میرم کوه سراغ کبک آی کیف میده؟ خب خبرم می کردی منم می اومدم. روی چشمم دفعه دیگه بذار برفیاد اسمایل با تعجب نگاهش را در افق گرداند و گفت یعنی میگی بازم ممکنه برف آره با با سر خرمنم میاد این سبلان دیوونه است صدایی از طرف مدرسه شنیده شد مردی آمده بود وسط کوچه و داد زد آهای آهای مگه کلاس نداریم این ببینمو سلطان گفت خودشه معلمه بچهها دست جمعی به طرف مدرسه دویدند با هم مسابقه گذاشته بودند دختر و پسر صدای پایشان توی میدان پیچیده بود با همون سرعت رفتن توی مدرسه کوچه و میدان خلوت شد تنها آن دو موندند پرسید خب کی می‌خواد شیرینی عروسی تو بدی سلطان یک قدم جلو آمد و با خنده ای که لبهایش را کش داده بود گفت پسر پسرخاله تو دعا کن کار منو نازی درست بشه یه جعبه شیرینی بهت میدم یه جعبه یه جعبه چه خبره مگه سلطان خواست چیزی بگوید صدایش گیر کرد رنگش پرید با عجله پایش را روی رکاب گذاشت و گفت پدرش اومد من رفتم پدر کی؟ پدر زنم دیگه گوتاز پدر نازی خوب نیست منو ببینه به سرعت رکاب زد و از آنجا دور شد قوتاز بیل بر دوش داشت و چکمه بلندی که ساقهایش تا زیر زانویش میرسید پوشیده بود کلاه لبدارش را تا روی ابرو پایین کشیده بود تا آفتاب به چشمهایش نتابد چکمه به پایش گشاد بود. تلق تلق صدا میداد لاغر و قد بلند بود خشک مانند تک درختی رویده در شیب کو همونطور تکیده و همونطور چغر وقتی به اسمایی رسید پاس کرد و گفت کیف و احوال جلو آفتاب وایسادی. زنده باشین آفتاب بنفشه دره می چسبه. آی گفتی وایسا کیف کن وایسا. بدون توقف دور شد کفچه بیلش در نور خورشید میدرخشید. اسماعیل پشت سر قوتاز آرام آرام به طرف مدرسه راه افتاد اسحاق جلو دوکانش را آب و جارو می کرد از دور برایش دست داد. او هم دستش را به همراه آفتابه بلند کرد و جوابش را داد به مدرسه رسید دیوارهایش را با سیمان سفید که شیشه های ریزی داشت رو کار کرده بودند خورشید از دور درون خورده شیشه ها می شکست و پاره پاره می تابید مدرسه حیات نداشت در کلاس به سوی دشت و شیب ملایم تپه‌هایی که کم کم سبز می‌شدند باز می‌شد. اتاقک حلوی ساز کوچکی مانند آلونک کمی دورتر از ساختمان اصلی ساخته بودند که مستراح مدرسه بود. به ساختمان نزدیک شد. دو اتاق بیشتر نداشت. یکی کوچک که شکل دفتر بود و دیگری بزرگتر که کلاس اصلی مدرسه بنفشه دره بود. چند پایه پای همونجا و معلم درسشان می‌داد. از پشت شیشه به کلاس نگاه کرد. دخترها و پسرها جدا جدا نشسته بودند. معلم کتاب به دست میان میزها و نیمکتها میگشت و دیکته می گفت. ادهی دیکته معلم را می نوشتند. چند نفری هم مشغول مشق بودند. تا بود دیکته تمام شود و معلم به سراغ آنها بیاید. اسمایل چند بار اطراف کلاس بالا و پایین رفت و هر بار از زیر چشم به داخل نگاه کرد. معلم های سیاه و پرپشتی داشت. که مثل ماهوت پاک کن چسبیده بود به پشت لبش و سراخهای بینیش را تنگ کرده بود ابروهایش هم مشکی بود و پرپشت و به سبیلش می آمدند. در عوض سر بزرگش کم بود تاسیه زودرسی به سراغش آمده بود قد کوتاهی داشت با شکمی گرد و برآمده که به دکمه های بسته جلیق فشار می آورد تا کمی بیشتر تبله کند در یک لحظه نگاهشان از پشت شیشه به هم افتاد و گره خورد. طوری که مجبور شدند برای هم سرخم کنند و زیر لب بیان که دیگری بشنود سلام بدهند برای اینکه معلم چشمش به او نیفتد و حواسش پرت نشود از پشت پنجره کنار کشید و سمت دیگر مدرسه کمرش را تکه داد به دیوار و رو روی یک پای استاد و کف پای دیگر را هم گذاشت روی دیوار و رو به همان حال ماند و چشم دوخت به روبرو رو که تا چشم کار میکرد باغ بود و چمنزار همه در تلاطم بودند قادقاد قاد بلند گله قازهای بزرگ و قرولند مقرورانه بوغلمونهای متکبر با هاف هاف اغلب بی معنی سگها در هم میامیخت و میجوشید و بالا و پایین میشد. و آخر سر به صورت زندگی در گوشه ای از بنفش در, در میآمد در آن میان صدای جیغداد پیر زنی را شنید که به دنبال گاوش بود. از باغ میامدند. گاو حراسان به طرف ده میدوید. پیرزن تناوی را که سر دیگرش به گردن گاو بسته شده بود محکم گرفته بود تلو تلو خوران دنبال حیوان کشیده میشد زن کمرش کمانه کرده بود به طرف پایین بیشتر به زمین نگاه میکرد گاو او را کشان کشان جلو مدرسه آورد وقتی از آنجا میگذشتند اسمایل چشمش به پای برهنه زن افتاد و شلیطه های پاره پیراهن کهنه‌اش که روی زمین کشیده میشد پاهایش هم زمین بود با پاشنه ای چاک چاک و انگشتان درشت و کج و با آن حال ناله کنان دنبال گاو کشیده میشد گاهی آنقدر کمرش کمانه میکرد که انگار چهار دست و پا می رفت. در تمام این مدت یک دم ساکت نبود مدام با گاو حرف میزد و شک میکرد و بد و بیراه می و از نفس می افتاد میگم وای نمیشنوی وایسا صاحب مرده وایسا بچت بمیره هروم بشی هروم اما گاو گوش نمیداد و همچنان او را به دنبال خود میکشید با تو هم ذلیل شده با تو هم بیستام با تو هم حیوون نفعم گویا او را با تناب به گاو بسته بودند و گاو را به او کشیده میشد روی زمین و میرفت دنبال گاو در همان موقع سر و کلهی سرخان و قریکشی پیدا شد به طرف مدرسه می آمدند که با آنها روبرو شدند سرخان با دیدن صحنه به وسط کوچه آمد و دستهایش را از دو طرف باز کرده جلوی گاو را گرفت و گفت ها حالا چطور زیور؟ چرا اینقدر جیغویق میکنی؟ اونقدر گابت رو دزدکی تو مزرعی ما چروندی که دیگه به حرفت گوش نمیده زیور عصبانی شد گور پدر هرچی آدم دروغگو گو تو هم وقت گیر وردی حالا برو کنار سرخان سرخ شد و کنار کشید و در آن حال لگد محکمی خوابان زیر شکم گاو اینقدر حافاف نکن اگه درست و حسابی بودی پسرات ولت نمیکردن و نمیرفتند. گاو که راهش را بازدید، دوباره دوید و زیور باز هم چهار دست و پا کشیده شد روی زمین. سرخان و قریجی به طرف مدرسه آمدند. در راه یکی دوبار برگشتند و به زیور و گاوش که در حال دور شدن بودند نگاه کردند. وقتی به اسمایی رسیدند سرخان ابروهایش را بالا انداخت و گفت: په. چطور متوری جهانگرد؟ اینجا چی کار میکنی؟ جهانگردی؟ جا قهد بود حتما باید اینجا جهانگردی کنی. من که میدونم زیر کاسه نیم کاسه است. سپس صورتش را به طرف قره‌کجی برگرداند و گفت: قره بگو ببینم دو دوتا چندتا چند تا میشه؟ او به جای جواب زوزه‌ای کشید و دستش را بلند کرد و چهار انگشتش را با خوشحالی نشان داد. سرخان محکم زد به تیره ی کمر قره‌کجی و با صدای بلندی گفت: ها زنده باد قره. دو دوتا همه جای دنیا میشه چهارتا. تا. حتی تو بنفشه دره. بعد خطاب به اسماعیل گفت: ملتفت شدی جهانگرد البته بله نگاهی به جاده انداخت و به اسماعیل گفت میای بریم شهر گفتم لندوبر بیاد نه ممنون از شهر خسته شدم اومدم اینجا اونو که ملتفتم از شهر اومدی بنفشه دره اما بجون تو خوش میگذرونیم چای قلیان نهار نوشابه مشابه خلاصه هرچی دلت بخواد و بعد گویا که تازه یادش آمده باشد لحنش را عوض کرد و گفت آه حواسم نبود تو ریش داری خیلی خوب نوشابه نوشابه نه اما بقیهش ردیفه اسمایل خندید و دستی به صورتش کشید و گفت حالا این لنداور کی میاد باید الان بیاد اگه جاده سرهجاش مونده باشه ده نیست که خراب است خرابه یهمشت نفهم اومدن جمع شدن اینجا اسمشو هم گذاشتن بنفشه دره اگه بگم فلان فلان شدهها بیان یکی یه بیل و کلنگ برداریم به این جاده درست کنیم، حاضر نمیشن نه خودشون میان نپول میدن من بلوزر ملوزر بیارم راه و ردیف کنه. قرومپتا مالشون به جونشون بنده. پس مریضا چی میشن؟ مریض؟ اینا مریض به دکتر ببرن؟ په خیلی شعورشون برسه اسفم براش دود میکنن. صد جور آش و ماش و میریزن تو حلقش وقتی هم که مرد میندازن رو اولاق و هش, هش میبرن قبرسون. مگه تو ده تابود نیست که با اولاق میبرن؟ چرا یکی تو مسجد هست؟ حالا کی حوصله قص و تابود مابود داره؟ ببر زرتی بکن تو چاله و چند بیل خاک بریز روش تموم بشه بره پی کارش. این کارا حوصله میخواد. و بعد یک دفعه برگشت با دست زد پس گردن غرهکششی که کلاهش افتاد روی چشم و گفت. اگه تو تموم این بنفشه دره دنبال یه مرد بگردی غیر این قره خودمون هیچ هیچکس پیدا نمیکنی. بقیه از دم قررم پتم، غرهکششی کلاهش را بالا برد و خندید. لبهای کبود و لسه های بیدندان و قرمزش توی چشم میزد اینجا هم زوزه کشید، درست مثل زمانی که گریه می کرد. صدای نزدیک شدن ماشین از دور شنیده شد. هرسه به آن طرف نگاه کردند. لندوار از پشت تپه درآمده بود و در چاله چوله های جاده خاکی به چپ و راست تلو تلو میخورد و نزدیک میشد به زحمت از روی پل سنگی که روی نهر انداخته بودند گذشت و کمی بعد جلوی آنها توقف کرد. راننده در را باز کرد و سر و گردنش را خموند و از ماشین پیاده شد. قطع بلندی داشت. کت و شلوار تنش بود و کلاه لبهداری گذاشته بود. صورتش مثل جاده بنفشه دره از شدت آbole پر از چاله شده بود. حتی اثری از ابروی بالای چشمهایش نبود. در عوض وقتی حرف زد، جلوی دهانش چند دندان طلا برق زد. قرتی قرشمالینم جاده‌ست که دارین؟ درستش کن دیگه تو آخه ناصلماتی کت خدای اینجای. سرخان برف روخته گفت نظر دهنم باز بشه و اول و آخر این بنفشه در ریا رو یکی کنم بشین بریم راننده گفت به جون تو دارم میترکم بذار یه جایی پیدا کنم بیام و اطراف نگاه کرد چشمش افتاد به مستراح مدرسه با گامهای بلند و زانوهای خمیده به طرف آن دوید در حلبی و زنگ زده آن را باز کرد و خودش را انداخت توی آن و در حلبی را چنان محکم پشت سر خود به چارچوب کوبید که در دوباره برگشت و بازماند اما او با شتاب چنباتمه نشست روی چاله و در را به حال خود گذاشت. آن سر روستا هنوز زاری زیور به گوش می رسید. به گاو بد و بیراه می و جیغ می کشید و زجه میزد. این سر روستا صدای قازها و بوغلم در در آمیخته بود. سرخان و قره کنار ماشین منتظر راننده بودند. صدای دست جمعی قازهایی که از آسمان عبور می کردند شنیده می شد. به دنبال آن قاضای اهلی سرک کشیدند و چشم به آسمان دوختند و جوابشان را دادند. صدایشان از همه صداها بلندتر بود. سرخان نگاهی به آسمان کرد. بعد کتش را درآورد و در هوا چرخاند و داد زد: کیش! کیش. گمشین گورتونو گم کنین آشقالا. کیش بی ساوا. بعد خطاب به قره‌کشی اسمایل گفت: بابا نمیدونیم که میان قاضای خونه ما رو هم با خودشون میبرن. شانسو بینی؟ مرغ هوا هم به ما بند میکنه. اسمایل نگاهش همراه قازهای وحشی رفت به طرف دریاچه و نیزار و آن نگاه مند لابلای نیها راننده آسوده از مستراح بیرون آمد در حال راه رفتن دکمه های شلوارش را میبست و نزدیک میشد سرخان گفت مثل اینکه خیلی کار داشتی تو با کار من چی کار داری بشین خودش نشست پشت فرمان سرخان از طرف دیگر رفت و نشست بغلست راننده ماشین روشن شد و لرزید قرقاشی هم خودش را پشت سر آن دو جا کرد و در را بست. ماشین راه افتاد. سرخان برای اسماعیل دست تکان داد. ماشین دوباره در جاده‌ی خاکی پر از آب کند و دستانداز تلو تلو خوران راه افتاد. از پل سنگی عبور کرد. از تله خاکی گذشت و چند دقیقه بعد پشت تپه پیچید و فقط صدایش ماند که آن هم رفته رفته دیگر شنیده نشد. دوباره کمرش را تکیه داد به دیوار مدرسه و اطراف نگاه کرد. خورشید رفته رفته گرم می شدد. مورچه ها جان گرفته بودند. در یک خط طولانی که اول آخرش معلوم نبود با شتاب در حال رفت آمد بودند. گاهی شاخک هایشان را به هم میمالیدند و احتمالاً با هم خوشوبش میکردند و به راه خود ادامه میدادند. سر و کله چند پرسو هم پیدا شده بود. سیاه بودند و سریع، توی آسمان غیغاج میرفتند و جیغ میکشیدند و پشش کار میکردند. همه در جوش و تلاش بودند، در زمین و آسمان. در همان حال بچه‌ها با داد و فریاد از کلاس بیرون ریختند و بیشترشان با هم به طرف مستراح مسابقه گذاشتند. پسر بودند. آن چند دختری هم که در مسابقه شرکت کرده بودند، وسط راه پشیمان شدند و برگشتند به طرف دوستانشان که دم کلاس ایستاده بودند و دوندگان را تماشا می‌کردند. مستراح برای آن همه جا نداشت. برای همین دست به شدند و یکدیگر را به عقب هل دادند و صدای معلم را درآوردند. آهای چه خبرتونه؟ مثل آدم یکی یکی پشت سر هم به نوبت بچه ها سر درد دلشان باز شد آقا اجازه آقا ما زودتر رسیده بودیم آقا ما اجازه با ایرام و حل دادن بعد دستهایش را گذاشت میان پاهایش و زانوهایش را به هم فشرد دیگری گفت نه آقا ما زودتر از همه رسیدیم و دستمون گذاشتیم رو مسترا اما اجدان نذاشت گفت من اول رسیدم معلم هر دو دستش را به طرف این باز کرد و نیم دایره ای در هوا کشید و گفت خیلی خوب، حالا فهمیدم، اجدر تو گنده تری، بپر برو خونتون کارتو بکنه مثل قرقی برگرد بیا، از بایرام و عهد هم اول بایرام بره بعد عهد، خودتونو خوب بشویین، اگه آفتاباب نداشت یکیتون بره از چشم آبش کنه، اجدر که کت بلند و گشادی پوشیده بود و شلوارش را توی ساق چکمه هایش فرو برده بود، انگشت زمخت اشارهش را بلند کرد و گفت، آقا اجازه، ما بریم پشت دیوار مدرسه چیز کنیم؟ بابام گفته برم برای گاوا علف چینام بیارم، ببینه دیگه نمیذاره برگردم. خیلی خوب. پس بب پر پشت دیوار خودتو با سنگ تمیز کن. در پرسید. آقا با چند تا سنگ تمیز میشه؟ زهر مار من چه میدونم، با هر چند تا که شد. آقا مادرمون گفته با هفت سنگ. خیلی خوب با هفت سنگ. یکی از دخترها جلو آمده گفت: آقا اجازه؟ من برم یه سطل آب برای نهنم ببرم تنهایی داره نوم میپزه تو هم بارو زود برگرد دختر با خوشحالی دوید صدای تلق و طلوغ چکمه گشادش آشکار شنیده میشد معلم رو به بچه ها کرد و گفت همین جا باشین الان کلاس شروع میشه